به نام خدای مهربان سلام بر شما هموطنان و همراهان مهربان مجاورومیه هزار افسان این برنامه کاری از گروه جوان به فرهنگ شبکه جوان افسانه ها سند ارزشمند و معتبرند که سینه به سینه نقل شده و تا به امروز نگهداری و ضبط شدند افسانه ها سرشار از آرزوها اعتقادات و باورها و تلاشی مضارع و مداوم برای پربار کردن زندگی شرافتمندانه افسانه انگوشتری شاه عباس رو براتون نقل می کنم که درباره اعمال پادشاهان آورده شده این افسانه برگرفته از کتاب فرهنگ های مردم ایرانه که به همت رضا خندان گردآوری شده بشنوید افسانه انگشتری شاه عباس رو. در رفتار پادشاهان آوردن که در زمان شاه عباس حاج نعمت نامی بود که دکان چلوکبابی بزرگی داشت حاج نعمت مرد خوب و درستکاری بود و با مشتریان با خوشرویی برخورد برخوردن کرد و همیشه به زیردستان توجه خاصی داشت. و این رفتار و کردار و اون زبانزد عام و خاص بود و همه برای صرف قضا به دکان چل او میرفتند تا جایی که کار دکانهای غذاخوری دیگه کساد شد و از رونق افتاد صاحبان دکانهای غذاخوری دیگه که از این وحظن ناراحت و عصبانی بودند تصمیم گرفتند علیه حاج نعمت شایعاتی رو بر سر زبونها بندازند و این موضوع رو در بین مردم شایع کردند که شنفتی که شنفتیکه هاجنعمت جاسوس اجنبی از آب در اومده آره شنفتم تازه میگن تموم گوشتایی که به خورد مردم بیچاره میداده گوشته آره منم شنفتم ولی خودمونیم خوب تونسته بود خودشو تو دل همه جا کنم لعت این آدم متصاحه خلاصه هر جا صحبت از حاجی نعمت بود و شایعات به سرعت با دهن به دهن از گوش و کنار شهر به گوش مردم میرسید تا اینکه این شایعات به گوش شاه عباس هم رسید. شاه عباس برای روشن شدن قضیه این شایعات فکری به خاطرش رسید. فورا وزیرش رو صدا زده گفت آی وزیر با تو هم مردک کجایی؟ وزیر با سرعت جلو اومد و تعظیم کرد و گفت قربان در خدمت حاضرم امر بفرمایید شعباس عباس گفت زودتر آماده شد تا به چلوکبابی حاجی نعمت بریم وزیر با تعجب پرسید قربان چلوکبابی حاجی نعمت شعباس عباس سریع تکون داد و گفت درسته چلوکبابی حاجی نعمت وزیر تعظیم کرد و گفت چشم قربان ولی ولی مردم میگن که پاجی نعمت شا عباس حرف وزیرش رو قطع کرد و با عصبانیت گفت مردک چرا متوجه نیستی ما کاری به حرف مردم نداریم فباید خودمان در صحت این شایعات تحقیق کنیم متوجه شدی وزیر به تندی پاسخ داد بله قربان بله بله قربان متوجه شدم شا عباس فکری کرد و گفت حالا برو و دو دست لباس آماده کن وزیر با تعجب پرسید لباس قربان؟ لباس برای چه؟ شا عباس نگاهی از سر خشم به وزیر انداخت و گفت مردک مثل اینکه تو هنوز متوجه نیستی وزیر تعظیم کرد و با ناراحتی گفت متاسفم قربان شاهباس گفت ما باید با لباس مبدل به آنجا برویم متوجه شدی؟ هیچ کس نباید ما رو بشنسه حتی حاجی نعمت متوجه شدی که چی گفتم؟ وزیر تعظیم میکرد و گفت بله غربان بله بله کاملا متوجه فرمایش حضرت عالی شدم از سایه سایه دو دست لباس آماده میکنم قربان. وزیر دوباره تعظیم می کرد و با سرعت رفت و چند دقیقه بعد شاه عباس و وزیر با لباس های مبدل در حالی که سر و صورتشونو کاملا پوشونده بودن به طرف دکان چل و کبابی هاجی افتاد دکان چلوکبابی حاجی نعمت خلوت بود و معلوم بود که تمام اون شایعات تأثیر خودشو گذاشته و کاروبار حاجی نعمت رو کساد کرده شعباس و وزیر با همون لباسهای مبدل آروم وارد دکون چلوکبابی شدند. حاجی نعمت ته دکون پشت میز چوبی بزرگی نشسته بود و سخت در فکر فرو رفته پیش خدمت که پسر جمون و سرزندهی به نظر می رسید به محض ورود شاه عباس و وزیر به پیشواز اون اومد و گفت خیلی خوش اومدین، غذا حاضر چی میل داریم؟ شاه عباس. شا عباس نگاهی به حاج نعمت انداخت حاجی هنوز در عالم خودش سیر می کرد و توجهی به اطراف نداشت وزیر گفت دو دست چلو کباب با مخلفات و شاه عباس صداشو بالا برد و گفت چره و ماست محلی فراموش جوان پیشخدمت با سرعت سفارش غذا را آماده کرد بعد از صرف غذا شاه عباس اشاری به وزیر کرد و هر دو به آرومی به طرف در خروجی رفتند پیشخدمت جوون با سرعت خودش رو اونا رسوند و گفت ببخشید مثل اینکه یادتون رفته حساب کنید البته اصلا قابل شما رو نداره وزیر نگاهی به شاه باسن انداخت و گفت نه جوون یادمون نرفته ولی ما پولی نداریم جوون پیشخدمت با تعجب پرسید پول نداریم یعنی چی شاه با صداشو بلند کرد و گفت ما حتی یک سکه هم نداریم و نگاهش کشیده شد به طرف حاجی نعمت که هنوز پشت میز بزرگش نشسته بود جوون پیشخدمت با صدای بلند حاجی نعمت رو صدا زد حاجی حاجی نعمت حاجی نعمت با اون اندام متوسط و چهره گندمگون ولی مهربون از پشت میز بیرون اومد و به شاهباز و وزیر نزدیک شد و با لحن آرومی به پیش خدمت گفت چی شده؟ آقایون مشکلی دارن؟ وزیر پیش تصدی کرد و گفت ما غذا خوردیم ولی پول نداریم که حساب کنیم همین یه تصدیق عباس تصدیح کنن سرشدتگون کن داد و گفت اصلا پول نداریم هیچی حتی یک سکه حاجی نعمت مکسی کرد و بعد با خوش گفت باشه هیچ اشکالی نداره هر وقت که پول داشتین بیاین و حسابتون رو پرداخت کنین شاه باز و وزیر نگاهی از سر تعجب و ناباوری به همدیگه انداختن و توی صورت حاجی خیره شده هاجی نعمت دستی بر شونه شاه عباس زد و گفت خوش اومدی خوش اومدی دوباره به پشت میز برگرده که شاه عباس انگشتری رو که در انگوش داشت بیرون آورد و گفت صبر کنین بهتر این انگشتری رو گلو داشته باشین هاجی نعمت بتوندی گفت نه نه نه نه نه به این کار نیست شاه اباس گفت نه بهتره پیش شما گروه باشه و وزیر اضافه کرد و گفت اینجوری خیال ما هم راحت تره حاجی نعمت گفت نه انگشتر تو تو دستت کن نمیخوام ولی شاه اباس باز اصرار کرد و بالاخره حاجی نعمت ناچار انگشتر رو از شاه عباس گرفت و توی کشوی میزش گذاشت و بعد تا دم در خروجی شاه عباس و وزیر رو بدرخی کرد. همون شب شاه عباس وزیرش رو صدا زد و گفت کسی رو بفرست دکونه حاجی نعمت تا انگشتری من برداره و نزد من بیاره و بعد رخشی رو که کشیده بود برای وزیر بازگو کرد وزیر هم فورا کسی رو شبونه فرستاد به دکونه حاجی اون شخص هم با مهارت خاصی انگشتری رو از کشوی میز هاجینه نعمت برداشت و به نزد شاه عباس اومد ساعتی بعد انگشتری در انگشت شاه عباس می درخشید. وزیر گفت: قربان الان باید چیکار کنیم؟ شاه عباس سکوتی کرد و بعد گفت: فعلا باید تا فردا صبر کنیم. فردا ادامه نخشم رو اجرا کنیم بعد کمرش رو صاف کرد و گفت: بهتره امشب بریم کنار رودخونه. قدمی بزنیم و با هم در مورد نقشمون بیشتر صحبت کنیم وزیر تعظیم کرده و گفت قربان فکر بسیار خوبیه من در خدمتم و با و وزیر آروم آروم به طرف رودخونه حرکت کردند. تو آسمون می و همه جا رو روشن کرده بود شعباس به همراه وزیر در حال قدم زدن و گفتگو بود و همینجوری که داشت با انگشترش بازی می کرد یه دفعه انگشتری از انگشتش رها شد و افتاد توی روت خونه شعباس فریاد زد انگشترم انگشتری من وزیر با دست دور خودش شرخید و دیگه از کسی کاری ساخته نبود که نبود شا اباس با ناراحتی نگاهی به وزیر انداخت و گفت آخ، حالا باید چه کنیم؟ همه نقشه ما به هم خورد وزیر فکری کرد و گفت قربان یافتم این این بهترین فرصتیه که تمام حقایق روشن بشه شا مکسی کرد و گفت متوجه نشدم ما باید پول غذای حاجی نعمت رو بفرستیم و انگشتری رو از اون بخوایم درسته؟ وزیر سریع داد و با خوشحالی گفت بله قربان کاملا درسته. شاه عباس ادامه داد و گفت اگه حاجی نعمت برای پستادن انگشتری مهلت خواست به اون مهلت میدیم. و چند لحظه بعد فرستادی شاه عباس دم چلو کبابی حاجی نعمت حاضر شد. پیش جوون جون جلو اومد. و به فرستادی شا عباس گفت ببخشید غذا نداریم فرستادی شاه عباس گفت من با حاجی نعمت کار دارم پیش خدمت جوان پرسید ببخشید با اون چی کار داری؟ فرستادی شاه عباس گفت یک کار خصوصی جوون یه امانتی دارم که باید به دست خودشون بدم پیش خدمت جوان گفت صبر کن صبر کن الان به حاجی خبر میدم. جوون پیش خدمت رفت و به همراه حاجی نعمت به نزد فرستادهی شاه عباس اومد. حاجی با خوشرویی گفت: ای جوون با من کاری داشتی؟ شا فرستادهی شاه عباس سری تکون داد و دست در جیب لباسش کرد و بسته کوچیک رو بیرون آورد و به طرف حاجی نعمت دراز کرد و گفت: این امانت رو همون کسی فرستاده که انگشترش پیش شما گروه هجیمن بتوندی گفت بله بله بله بله درسته درسته و به طرف میز بزرگش رفت و کشوی اونو باز کرد اما هر گشت انگشتری رو ندید با چهرهی وحشت زده و نگران به طرف جوون پیشخدمت رفت و آهسته چیزی توی گوش اون گفت و جوون پیشخدمت شونه‌هاش رو بالا اینداخت و چهرش رو در هم کشید و رفت هر دوتاشون باز به طرف کشوی میز رفتند و توی کشوی میز رو خوب جستجو کردند اما اثری از انگشتری نبود که جنمت که از یافتن انگشتری ناامید شده بود رو کرد به طرف فرستاده شاه عباس و با لحن بریده بریده گفت خیلی ببخشید مثل اینکه مثل اینکه من امانتی رو توی خونه جا گذاشتم اونو جا گذاشتم اگه اگه ممکنه فردا برای پس گرفتن امانتی تشریف بیاری فرستاده شاه عباس هم پذیرفت و از دکان چلو کوابی هاچین خارج شد هاچین با ناراحتی و, و نگرانی قدم های دنبال کرد. هنگام حاجی نعمت ناراحت به خونش رفت بوی تند ماهی توی تمام فضای خونه پیچیده بود زن حاجی با چهره گشاده و خوشحال به پیشواز شوهرش اومد و گفت سلام حاجی خسته نباشی حاجی سری تکون داد و با صدای خفه و ضعیفی جواب سلام زنش رو داد و به گوشه پناه برد و توی فکر فرو رفت زن حاجی با خوشحالی گفت هاجی برای شام ماهی درست کردم میدونم که خیلی دوست داری و توی صورت حاجی نمت خیره شده و پرسید شام بکشم حاجی جوابی نداد و به نقطه خیره مونده بود و حتی پلک هم نمیزد زن که متوجه حالت غیرعادی شوهرش شده بود با ناراحتی به اون نزدیک شد و پرسید هاجی خبری شده حاجی باز هم چیزی نگفت و همچنان به نقطه ای نامعلوم خیره مونده بود زن دوباره پرسید حاجی, حاجی، با تو هم اتفاقی افتاده؟ نام. حاجی یه دفعه به خودش اومد آه بلندی کشید و زیر لب گفت نه نه اما زن ولکن معامله نبود و اونقدر حاجی رو سال پیچ کرد و بالاخره حاجی نعمت تمام ماجرا رو برای اون تعریف کرد و با نارتی گفت حالا زن جواب اون مرد رو چی بدم اون اون امانتیشو میخواد تازه تازه آبروی منم در میونه اگه زن با هیجان گفت من میتونم کمکت کنم حاجی با تعجب به چهره خوشحال و خندون زنش نگاه کرد و پرسید میتونی چجوری؟ جوری زن با هیجان گفت هاجی من،, من،, من امروز یه ماهی خریدم و وقتی داشتم ماهی رو تمیز میکردم توی شکم اون یه انگشتری پیدا کردم من، من... من... بعد با آب و تاب و حیجان ادامه داد نمیدونی هاجی چه انگشتری قشنگیه برق شش آدم و کور میکنه مثل ستاره میدرخشه حتما خیلی قیمتیه <تصفيق> هاجی هاج و واج به دهن زن شش دوخته زن گفت الان میارم نشونت میدم خیلی قشنگه بلند شد و رفت و زن انگشتری رو آورد و جلوی چشمهای متعجب حاجی گرفت حاجی با دیدن انگشتری از جا بلند شد و انگشتر رو از دست زنش خاپید و گفت بده ببینم بعد با دقت و ناباوری انگشتری رو زیر رو کرد و زیر لب گفت خودشه یعنی ممکنه و دوباره با دقت انگشتری رو برانداز کرد بله انگشتر انگشتر شاه عباس بود و هیچ شکی در اون نبود حاجی نعمت از خوشحالی به این طرف و اون طرف می رفت و زیر لب خدا رو شکر می‌کرد و میگفت خدایا تو خیلی رحیمی خدایا متشکرم متشکرم ممنونم رو کرد به طرف زن حاجی نعمت و گفت آبروم آبروم حف شد زن از تو هم ممنونم و بعد انگشتری رو توی جیبش گذاشت و آثار خوشحالی و آسودگی توی چهرهش نمایان شد بردا صبح زود حاجی نعمت با قدم های شتابان به طرف دکان چلو کبابی خودش حرکت کرد به محض ورودش به دکان پیشخدمت که در گوشهی در حال چرد زدن بود از جا پرید و سراسیمه گفت سلام سلام اتفاقی افتاده؟ حاجی نعمت با آسودگی خیال پرسید چطور؟ پیشخدمت گفت آخه حاجی سبب این زودی شما؟ حاجین با خوشحالی گفت خیره حیر. و بعد سراغ فرستادی شاهباس رو گرفت و پیش خدمت به حاجی گفت هنوز ده ولی تا زور حتما میاد حاجی سری داد و به طرف نیز شفت و منتظر اومدن فرستادی شاهباس موند یک ساعت بعد فرستاده شعباس به دکان چلو حاجی نعمت اومد. حاجی که سخت منتظر اومدن او بود با شتاب به استقبالش رفت و فورا انگشتری رو بهش داد. و فرستاده شعباس عباس رو گرفت و به نزد شا عباس بود. شا عباس با دیدن انگشتری از جا بلند شد و فریاد زد این این غیر ممکنه و وزیر رو صدا زد. وزیر آهای وزیر وزیر با شتاب به نزد شاه عباس رو و وقتی انگشتری رو در دستان شاه دید اونم از تعجب سر جاشی استاد و نتونست حرفی بزنه شاه عباس فورا دستور داد تا حاجی نعمت رو احزار کنن تا پی به راز این انگشتری ببره اون نمیتونست باور کنه که انگشترش به دست حاجی نعمت رسیده وزیر لب میگفت آخه چطوری ممکنه؟ این غیر ممکنه، این غیر ممکنه چند لحظه بعد حاجین نعمت نزد شاهباز اومد و شاهباز از اون پرسید حاجی بگو ببینم این انگشتری چجوری به دست تو رسیده؟ راستش حاجی نعمت هم تمام ماجرا رو برای شاه عباس تعریف کرد و شاه عباس متوجه شد که اونچه چه درباره حاجی نعمت شایعه کردن فقط و فقط از روی بخل و حسادته و دستور داد به حاجی نعمت خلعت و پول زیادی بدن حاجی نعمت هم با خوشحالی در حالی که زیر خدا رو می کرد از غصر شا عباس خواه. بله، افسانه انگوشری شاهباس رو براتون نقل کردم افثانه ها در گستری تاریک تاریخ پنهان و نانوشته اقوام پیشین شنونده و خاننده افثانه ها رو خواسته و ناخواسته با خودش همسفر می کنه و لحظاتی هرچند کوتاه خاننده یا شنونده رو از دنیای های پرحیاهو و پردغدغه امروز دور می و لذتی خاص به روح اون میبخشه این برنامه کار مشترکی بود از نویسنده و سردبیر زینت صالحپور راستار بهار گیویان اجرا مهران دوستی صدا بردار هیدر صفدری اسکوی تیه کننده زهرا عبدالله زاده سان دیگر به